پدر گرامی امیدوارم حالتون خوب باشه حتما از اینکه مدت درازی که برای شما نامه نوشتم از من رنجیدین و فکر کردین که من شما را دوست ندارم اما در حقیقت اینطور نیست من همیشه دلم میخواسته برای شما نامه بنویسم و با شما درد دل کنم اما هر وقت پیش خودم تصمیم گرفتم که نامه بنویسم بلافاصله از خودم پرسیدم که خب چی بنویسم این فاصله ای که بین من شما به وجود اومده رو با چه چیز میتونم پر کنم. من دوست نداشتم بنویسم اصلا دلم نمیخواست بنویسم حالم خوبه و سلامتم و شما چطورید و چه کار میکنید دلم میخواست همه زندگیم رو، همه حصا و درد و بدبختی بختیام رو بر شما به انویسم. اما نمیتونستم، هنوز هم نمیتونم. چون وقتی پایه‌های ساختمان افکار و عقاید ما در دو زمان مختلف و در دو اجتماع که از لحاظ شرایط کاملا متفاوتن ریخته شده ما چطور میتونیم در میون خودمون حسن تفاهم ایجاد کنیم اگه من بخوام حرفامو شروع کنم باید یک کتاب بنویسم میترسم حرفهای من شما رو متاثر کنه و براتون خوشایند نباشه اما منم نمیتونم تا وقتی که این حرف توی سینمه احساس رضایت و آرامش کنم و وقتی شما رو میبینم خودم باشم نه یه موجودی که نه میخنده نه حرف میزنه و فقط میتونه کس کنه و یه گوشه بنشینه. درد بزرگ من اینه که شما هرگز منو نشناختین و هیچ وقت نخواستین منو بشناسین شاید شما هنوز وقتی وقتی راجب من فکر میکنی من و یه زن سبکسر با افکار ای که از خوندن رمانای عشقی و داستان مجله مجلی تیران مصور در مغزش به وجود اومده میدونی. اما کاش اینطور تار بودم وقت میتونستم خیلی خوشبخت باشم. اون وقت به همون اتاقه که کوچولو و شوهری که میخواست تا آخر عمرش یک کارمند جز بمونه و از قبول هر مسئولیتی و هر جهشی برای ترقی و پیشرفت حراستاش و وراجی با زنهای همسایه و دوا کردن با مادر شوهر و خلاصه هزار کار کسیف و بیمانی دیگه قانعه میکرد و دنیای بزرگتر و زیباتری رو نمیشناختم. و مثل کرم ابریشب در دنیای محدود و تاریک پیله خودم میلولیدم و رشد میکردم و زندگیم رو به پایان میرسوندم اما من نمیتونم و نمیتونستم اینطور زندگی کنم وقتی خودم رو شناختم سرکشی و اسیان منم در مقابل زندگی با این صورت احمقانه شروع شد من میخواستم و میخواهم بزرگ باشم من نمیتونم مثل صد تا هزار مردم دیگه که در یه روز به دنیا میان و در روزی دیگه از دنیا میرن بدون که از اومدن و رفتنشون نشونه ای باقی بمونه زندگی کنم. در من این هست ولی هرگز نمیگم اونچه که تا به حال انجام دادم صحیح بوده و کسی نمیتونه به من اعتراضی کنه نه. من خودم میدونم که در زندگیم خیلی اشتباه کردم، اما کیس که بتونه بگه همه اعمال و افکار و رفتارش در سر و سر زندگی عاقلانه و درست بوده؟ من اصلا دختر بدی نیستم و هرگز در زندگیم نخواستم باعث سرفکندگی خانواده باشم. من اگه در این راه قدم گذاشتم برای این بود که فامیل من به وجود من افتخار کنم. و هنوزم فکرم همینه و مطمئنم که یه روز به هدفم میرسم. اما چیکار میتونستم بکنم وقتی هرگز و در هیچ جا برای من آسایشی وجود نداشت و هیچ وقت نمی دهنم رو باز کنم و حرفمو بزنم و خودم رو به شما و به دیگرون بشناسونم یادم میاد وقتی من در خانه برای خودم کتابای فلسفی می خوندم و مینشستم ها به استاد فلسفه دانشکده ادبیات راجب های شرق بحث میکردند شما راجب من اسار عقیده میکردی که دختر احمقیم که در اثر خواندن مجله های مزخرف فکرم فاسد شده اون وقت تو خودم اون وقت تو خودم خرد میشدم و از اینکه انقدر تو خونه غریبم آتش تو چشمم جمع میشد و سعی میکردم خفه بشم و به کاری کسی کاری نداشته باشم و یا هزار نکته دیگر نظیر اینکه شاید در نفس خودش زیاد مهم نباشه، اما هر کدوم به تنهایی برای خرد کردن روحی و شخصیت فردی کافیه. اگه بخوام حرف بزنم، باید خیلی چیزا رو بگم. اول باید از شما شروع کنم، از کسی که با محبتش میتونست ما رو به خودش نزدیک کنه و راهنمای ما باشه، اما با خشونتش ما رو از خودش میترسوند. و باعث می شد که ما به خودمون پناه بیاریم و با مخصای کوچکیمون مسائل بزرگ زندگی رو حل کنیم و چه بسا که دوچار اشتباه بشیم. یادم میاد گای آقاد به فکر شما میرسید که ما رو نسیحت کنید. اما فقط وقتی خودتون حس میکردیم که احتیاج به حرف زدن دارین نه وقتی که ما احتیاج به شنیدن. و شما بیان که در نظر بگیرید که آیا شرایط و موقعیت مهمتر از روحی های ما آماده برای درک و قبول نصایح شما هست یا نه یکی رو از توی رخت خواب و دیگری رو از سر میز غذا و بعد سومی رو در حالی که غرق در بحر مطالعه بود صدا میزدین و بعد نصایح شما بدون هیچ مقدمه شروع می شد با عبروه گره کرده و سری که همیشه به زیر بود مثل اینکه شما میترسیدین اگه به چشمای ما نگاه کنی و به روی ما بخندین ما محبت و ظرافت احساسات شما رو درک کنی و این برای شما بد باشه و بعدا نتونین باز ما رو وادار کنین که از شما اطاعت کنیم و از شما بترسیم هرگز یادم نمیاد که حرفای شما را جدی تلقی کرده باشم وقتی شما با حرارت ما رو نصیحت کردین، من اطمینان دارم که سایر بچه ها مثل من فکرشان جای دیگری سیر میکرد و هرگز به یاد ندارم که فردا صبح که از خواب بلند میشدم همه این از شما رو فراموش نکرده باشم و برعکس چه بس اوقات که روح من در اثر ارتکاب خطایی از پشیمانی و ندامت میلرزید و دلم میخواست که پیش شما بیام و بگم که چه کردم و از شما بخوام که من نصیحت کنی اما مثل همیشه ترسیدم و حس کردم که با شما بیگانم. اصلا چرا باید اینطور باشه؟ شما که انقدر کتابایی روانشناسی خوندین باید علت این چیزها رو خوب بدونین. هر وقت به زندگی گذاشتم، زندگی یک سال گذشته در منظر شما فکر میکنم قلبم پایین میریزه مثل دوست همه کارم پنهانی کارای خوب و کارای بد چرا برای من شخصیت قائل نبودید؟ و چرا من وادار میکردین که از خونه فراری باشم و مثل آدمی که در خواب راه میره ندونم که کجا هستم و چه میکنم و با که حرف میزنم چرا جرات نداشتم دوستانم رو به خونه بیارم و با شما آشنا کنم تا اگه خوبی یا بد هستن به من تذکر بدین و منو کمک کنی، و به ناچار خطا میکردم. خطاهای زیاد. اما حالا چرا به اینجا آمدم و چرا رنج گرسنگی و دربدری و هزار بدبختی دیگر رو تعمال میکنم برای اینکه من خونه رو دوست دارم. من دلم نمیخواست صبح تا شب توی خیابونا بدون هدف را برم و از خستگی و فشار روی و صحبت هر کسانا کسی رو تحمل کنم، فقط بر اینکه در خونه غریبم و نمیتونم خودم رو بشناسونم و آرامشی داشته باشم حالا اومدم اینجا، آزاد هستم، همون آزادی که شما ترس داشتین به من بدین و من پنهان از شما تلاش میکردم که به دست بیارمش، و به همین دلیل دوچاره اشتباه می شدم، در حالی که حق این بود که شما در به دست دوردن این آزادی از راه صحیح به من کمک می کردی. حالا اینجا، اما چه کسی می تونه بگه که من یک شب بیرون از خونه خوابیدم؟ نه، من صبح تا شب توی اتاقم هستم و کار خودم رو می کنم، علاقه هم ندارم به اینکه بیرون برم، برعکس تصور شما زن خیابون گردی نیستم. بلکه خودم هستم، زنی که دوست داره کنار میزش بشینه و کتاب بخونه و شعر بنویسه و فکر کنه. چرا؟ چون حس میکنم که مال خودمم، حس میکنم که در خونه راحتم، دیگه چشمای کسی با تنفر و تغییر من نگاه نمیکنه. دیگه کسی به من نمیگه این کار رو بکن، این کار رو نکن، کسی منو یه بچه نفهم نمیدونه و من برای خودم، برای حفظ وجود و شخصیت خودم احساس مسئولیت میکنم، و هرگز بعد از این نمیتونم خودم رو در مورد اشتباهی که ممکنه مرتکب بشم ببخشم، در حالی که پیش خودم وقتی راجع به گذشته فکر میکنم، هرگز خودم رو کار نمیدونم، بلکه دیگرون رو باعث اشتباهات و خطاهای خودم میدونم، افسوس که نمیتونم همه حرفامو بزنم. اگه به من اجازه می و قول می که از من نمیرنجین خیلی حرفا برای گفتن داشتم. میخواستم از اول زندگیم شروع کنم و هر لحظه اونو برای شما شرح بدم و همه افکارمو بنویسم. من خیلی راجع به زندگیم فکر کردم و همچنین راجع به شما و طرز تربیت و تفکر شما و در مورد خودمون. اما حالا چی میتونم بکنم؟ اگه بدونم که شما از من میرنجین، بهتره که همیشه همینطور با لبای بسته و چشمایی که طلب محبت میکنه به شما نگاه کنم و دلم پر باشه و حرفهای ما هیچوقت سلام و اول پرسی تجاوز نکنه. انقدر بدونین که منم هم مثل همه بچه ها شما رو دوست دارم و دلم نمیخواد کاری کنم که شما رو ناراحت کنم. و بازم میدونم که ممکن نیست پدر و مادر فرزندانشون رو دوست نداشته باشن. شاید پیش از این که من شما رو دوست دارم، شما منو دوست داشته باشی. من خودم وقتی به کامی فکر می کنم، دلم میخواهد خواهد از قص فریاد بزنم و زارزار زار گریه کنم. اما وقتی تفاهم نیست، هر دوی ما دوچار اشتباه می شوی.